یازده چشمنداز های امپراتوری رومیان باستان به شکست عادت داشتند. آنها همچون دیگر حاکمان اغلب امپراتوری های بزرگ تاریخ می توانستند در نبردها یکی پس از دیگری شکست بخورند. اما همچنان برنده جنگ باقی بمانند. آن امپراتوری که نتواند در مقابل ضربه ای پایداری کند یک امپراتوری واقعی نیست. حتی رومیان نمی توانستند خبرهایی را که از شمال ایبریا در عواست قرن دوم قبل از میلاد می رسید به راحتی هضم کنند. یک شهرک کوهستانی ناچیز به اسم نومانتی که سلتیهای بومی شپ جزیره را در خود جای می داد، به خود جرأت داد تا خود را از زیر یوغ رومیان رها کند. روم بعد از چیرگی بر امپراتوری های مقدونیه و سلوکی و متی کردن شهر مقرور دولت یونانی و ویران کردن کارتاگو فرمان تمامی مناطق مدیترانه در آن زمان بود. ساکنین نومانتی به جز اشقی آتشین و آزادی و زمین نامرقوب هیچ امتیاز برجستهی نداشتند. اما آنها سپاهیان رومی را یکی پس از دیگری به تصنیم و عقب نشینی خفتبار وادار می کردند. تحمل رومیان بالاخره در سال 134 قبل از میلاد به سر رسید. مجلس سنا تصمیم گرفت سرکرده ارشد روم، اسکیپی و امیلیانوس را به سراغ نومانتیها بفرستد، مردی که کارتاج را با خاکی یکسان کرده بود، او با خود یک ارتش عظیم متشکل از بیش از سی هزار سرباز را همراه کرد. اسکیپیو که به مهارتهای رزمی و روحیه جنگنده نومانتیها احترام میگذاشت، ترجیح داد تا از به هدر دادن سربازانش در نبردی غیر ضروری خودداری کند. او به جای این کار، نومانتی را با صفی از سنگربندیها محاصره کرد و راه شهر به بیرون را مسدود کرد. سرانجام گرستنگی این کار را برای او انجام داد. پس از بیش از یک سال تمام آزوغه نومانتی ها تمام شد و وقتی همه امیدشان را از دست دادند شهرک خود را با تشکشیدند و بر اساس توصیفات خود رومیان اکثرشان خود را کشتند تا برده رومی ها نشوند. نومانتی بعدها سمبول استقلال و شجاعت اسپانیایی شد. میگول دو سروانتس نویسنده دونکی شد تراژدی محاصره نومانتی را نوشت که با تخریب شهر و همزمان با چشمانداز شکوه اسپانیای آینده خاتمه می یابد شاعران در وصف مدافعان پرقرور نومانتی تصنیف ها نوشتند و نقاشان پرده های پرشکوهی از محاصره را به تصویر کشیدند در سال 1882 ویرانهای شهر به عنوان یک بنای تاریخی ملی به زیارتگاهی برای وطن اسپانیایی بدل شد در دهه های 1950 و 1960 اکثر کتاب مصور خنددار در اسپانیا نه سوپرمن و اسپایدرمن بلکه ماجره های الجاباتو بود یک قهرمان خیالی ایبریای باستان که بر علیه رومیان سرکوبگر به پا خواسته بود. نومانتی باستان برای اسپانیایی امروزی مزهر دلاوری و وطن پرستی برای نسل جوان شد. اما وطن پرستان اسپانیایی نومانتی ها را به اسپانیایی مستتایند که زبانی رومی و از اخلاف زبان لاتین اسکیپیوست. نومانتی ها به زبانی که امروزه منقرض شده یعنی زبان سلتی صحبت می کردند. سروانتس داستان محاصره نومانتی را به زبان لاتین نوشت و نمایش نامه از سبک هنری یونانی رومی پیروی میکرد. نومانتی تئاتر نداشت. و تمپرستان اسپانیایی که قهرمانی نومانتی را ستایش میکنند، تمایل دارند تا پیرو وفادار کلیسای کاتولیک رومی هم باشند. کلیسایی که پایگاه رهبرانش در روم است و خدایش تمایل دارد تا به زبان لاتین مورد خطاب قرار گیرد همینطور قانون نوین اسپانیا از قانون رومی نشأت میگیرد سیاست اسپانیا بر بنیادهای رومی بنا شده و آشپزی و معماری اسپانیایی بسیار بیشتر مدیون میراث رومی هستند تا میراث سلتی ایبریایی در واقع از نومانتی هیچ چیز به جز ویرانه باقی نمانده حتی ماجرای آن هم تنها به همت نوشتارهای تاریخ رومی به ما رسیده این نوشتارها طوری طراحی شده تا با زائقه مخاطبین رومی سازگار باشند که از حکایات بربرهای مشتاق آزادی لذت میبرند. پیروزی روم برنامانتی چنان کامل بود که فاتحان خاطره شکست خوردگان را از آن خود کردند. این آن نوعی از حکایت نیست که ما دوست داشته باشیم. ما دوست داریم که تو سریخورها پیروز شوند. اما هیچ ادالتی در تاریخ وجود ندارد. اغلب فرهنگ های گذشته دیر یا زود قربانی ارتش های نوعی امپراتوری بیرحم شدند و به فراموشی پیوستند. امپراتوریها هم روزی سقوط می کنند، اما آنها مایلند میراسی پایدار و غنی از خود به جا بگذارند. تقریباً تمام انسانهای قرن کن فرزندان این یا آن امپراتوری هستند. امپراتوری چیست؟ یک امپراتوری یک نظم سیاسی است با دو ویژگی مهم، اول اینکه یک امپراتوری برای رسیدن به این کیفیت باید بر تعداد چشمگیری از گروه های مردمی متفاوت حکومت کند که هر کدام هویت فرهنگی متفاوت خود را دارا باشند و در سرزمین های مجزای خود زندگی کنند. دقیقاً چه تعداد ملیت؟ دو یا سه کافی نخواهد بود. بیستیاسی کمی زیاد است. مرز امپراتوری بین این دو رقم است. دوم این که امپراتوری با مرزهای انعطاف پذیرش و اشتهای نامحدود بلغوهش مشخص می شود. آنها می توانند تعداد هرچه بیشتری ملت و سرزمین را در خود ببل اند و هضم کنند بدون آنکه هویت یا ساختار پایه آنها را تغییر دهند. بریتانیای امروزی مرزهای مشخصی دارد که قابل گسترش نیستند مگر اینکه در هویت و ساختار بنیادی خود تغییر ایجاد کند. اما تا همین ست سال پیش هر نقطه ای روی کره زمین می توانست بخشی از امپراتوری بریتانیایی باشد. تنوع فرهنگی و انعطاف پذیری مرزی نه تنها ویژگی منحصر به فردی به امپراتوری ها می دهد بلکه همچنین باعث می شود تا نقشی مهوری در تاریخ بازی کنند. این دو ویژگی این امکان را برای امپراتوری ها فراهم آورد تا بتوانند گروه های قومی و های زیست های مختلف را تحت یک چتر سیاسی واحد گرد آورند و به این ترتیب تعداد هرچه بیشتری از گونه انسانی و مناطق هرچه بیشتری از کره زمین را به هم پیوندهند. لازم به تاکید است که یک امپراتوری تنها با تنوع فرهنگی و این اتاف پذیری مرزی خود تعریف می شود و نه با ریشه ها شکل حکومتی، گستردگی ارزی یا میزان جمعیتش. یک امپراتوری لزومان به دنبال یک پیروزی نظامی شکل نمی گیرد. امپراتوری آتن حیات خود را به عنوان یک اتحاد داف طلبانه شروع کرد و امپراتوری هابسبورگ حاصل یک سلسله پیوندهای هوشمندانه بود. یک امپراتوری نباید همچنین توسط یک امپراتور مستبد اداره شود. امپراتوری بریتانیا که گسترده ترین امپراتوری تاریخ بوده، به صورت دموکراتیک اداره می شود. دیگر امپراتوری های دموکراتیک یا حداقل جمهوری از جمله های نوین هلندی، فرانسوی، بلژیکی و آمریکایی همچنین امپراتوری‌های پیشا نوین نووگورد، روم، کارتاژ و آتن بودند. اندازه هم در واقع اهمیتی ندارد. امپراتوری ها می توانند کوچک هم باشند. امپراتوری آتن در دوران اوجش از نظر اندازه و جمعیت بسیار کوچک‌تر از یونان کنونی بود. امپراتوری آستک کوچکتر از مکزیک کنونی بود با این وجود هر دو امپراتوری بودند اما یونان و مکزیک نوین امپراتوری نیستند زیرا امپراتوری های گذشته به تدریج دهها و حتی صدها شیوه حکومتی مختلف را تحت سلطه خود داشتند در حالی که چنین چیزی در مورد این نمونه های کنونی مستاق ندارد آتن بر بیش از صد دولت شهر مستقل آن زمان حکومت میکرد، ولی امپراتوری آزتگ بر بیش از 371 قبیله و قوم مختلف فرمان میراند. البته اگر به توانیم به اسناد مالیاتیش اعتماد کنیم. چطور ممکن بود این همه گروه های مردمی مختلف را در یک سرزمین محدود نوین داد؟ این ممکن بود، زیرا در گذشته اقوام پراکنده بسیار بیشتری در دنیا وجود داشت که هر کدام دارای یک جمعیت محدودتر بود و در مقایسه با ملت‌های معمول کنونی زمین کمتری را اشغال می‌کرد. سرزمین های بین مدیترانه و رود اردن که امروزه به دنبال جاه های دو قم در جنگ میسوزد در دوران کتاب مقدس دهها ملیت قم پادشاهیهای کوچک و دولت شهر را در خود جای میداد امپراتوریها یکی از دلایل اصلی تحلیل رفتن تنوعات گسترده قومی بودند اقتدار امپراتوری به تدریج بیشگی های منحصر به فرد اقوام کسیری، مثل نومانتیها را از بین برد و آنها را به گروه های جدید و بسیار گسترده تری تبدیل کرد. امپراتوری های شریر در دوران ما امپریالیست، بعد از فاشیست، دومین ناسزای است. انتقاد امروزی به امپراتوری معاصر عموماً دو شکل دارد. یک، امپراتوری ها کارایی ندارند. حکومت کردن به شیوه موثر بر شمار گسترده تودههای مغلوب در دراز مدت غیر ممکن است. دو، حتی اگر این امر ممکن باشد، نباید اعمال شود، زیرا امپراتوری نیروهای پلید ویرانساز و استثمارگر هستند. توده های مردمی دارای حق خودمختاری هستند و هرگز نباید تحت انقیاد دیگری قرار بگیرند. از دخت نظر تاریخی عبارت اول یک عبارت کاملا سخیفانه است و دومی عمیقا دوچار اشکال. واقعیت این است که امپراتوری عمومیترین شکل سازمان سیاسی در 2500 سال اخیر در دنیا بوده و اکثر مردم این مدت در امپراتوری زندگی کردند. امپراتوری همچنین یک شکل بسیار پایدار حکومتی است. اکثر امپراتوری ها به آسانی شورش ها را مهار کردند. آنها به طور کلی توسط تهاجمات خارجی یا تفرقه در میان قشر حاکم سرنگون شدند. برعکس، توده های مغلوب سابقه چندان خوبی در آزاد کردن خود از قید حاکمان امپراتوری خود ندارند و اکثرشان تیه صدها سال تحت انقیاد بودند و، معمولا به آرامی توسط امپراتوری حاکم تحلیل رفتهاند تا اینکه ویژگیهای فرهنگیشان را از دست دادند برای مثال وقتی امپراتوری روم غربی نهایتا در برابر قبایل مهاجم ژرمن در سال 476 کرنش کرد نومانتیها، اورونی‌ها، ها و صدها گروه فراموش شده دیگر که در صدهاهای قبل توسط رومی ها مغلوب شده بودند خود را از درون لاشه امپراتوری بیرون نکشیدند و در نهایت همگی از بین رفتند. فرزندان آنها که خود را عضو آن ملتها می‌دانستند به زبان آن ها صحبت می‌کردند خدایان آن ملت‌ها را می‌پرستیدند و اسطوره‌ها و حماسه های آن ملت‌ها را حکایت می‌کردند و پس از آن مثل رومیان فکر می‌کردند صحبت می‌کردند و پرستش می‌کردند در موارد بسیاری فروپاشی یک امپراتوری به معنای استقلال برای توده‌های تحت سلطه نبوده بلکه یک امپراتوری جدید جای خالی امپراتوری سرنگون شده یا از میان خارج شده را پر کرده. چرین چیزی در هیچ جای دیگری به اندازه خاورمیانه به وضوح دیده نمی شود. ساختار سیاسی کنونی منطقه که در آن یک موازنه قدرت بین واحدهای سیاسی مستقل با مرزهای کمابیش پایدار برقرار است تقریبا در چندین هزاره اخیر بی همتا بوده. آخرین بار که خاورمیانه چنین وضعیتی را تجربه کرده به قرن هشتم قبل از میلاد برمیگردد. یعنی در حدود سه هزار سال پیش. از ظهور امپراتوری نوآشوری در قرن هشتم قبل از میلاد تا فروپاشی امپراتوری های بریتانیا و فرانسه در میانه قرن بیستم خاورمیانه از دست یک امپراتوری به دست امپراتوری دیگر سپرده شده. مثل چوبی که در یک مسابقه دوی امدادی از دست یک دونده به دونده دیگر داده می شود و هنگامی که به بریتانیایی ها و فرانسوی ها به مرور زمان چوب را به زمین انداختند آرامی ها، آمونیت ها، فنقی ها، فلسطینی ها، ها، آدمین ها و دیگر گروه های تحت انقیاد آشوری ها مدت ها بود که از بین رفته بودند درست است که یهودیان رمنی و گرجیهای های ادعا می کنند که فرزندان مردم خاورمیانه میانی کوهن هستند و این تا حدودی صحت دارد اما اینها استثناعاتی هستند که بر قاعده سهه میگذارند. و البته این ادعاها تا حدودی قلف آمیز هم هستند. می توان گفت که مثلا عملکرد سیاسی اقتصادی و اجتماعی یهودی نوین بسیار بیشتر به جای اینکه متأثر از سنت های کهن پادشاهی یهودا باشند مدیون امپراتوری‌های هستند که طی دو هزار ساله اخیر زیر چترشان زندگی میکردند. اگر داوچاه در یکی از کنیسه های ارتودکس افراتی اورشلیم امروز ظاهر می از دیدن اینکه مردم لباس های اروپای شرقی می با لحجه جرمن یا یدیش صحبت می کنند و بحث های بیپایانی راجب متون بابلی دارند، تعجب میکرد. در یهودیه باستان نه کنیسهی وجود داشت و نه تومارهای تورات. بر و اداره یک امپراتوری معمولاً مستلزم قتل آمهای گسترده و سرکوب بازماندگان بوده. ابزار معمول امپراتوری جنگ، بردگی، تبعید و قتل آم است. وقتی رومیان اسکاتلند را در سال هشت تصخیر تسخیر کردند با مقاومت شدید قبیله های بومی کلدونی روبرو شدند و با ویرانسازی کشور اکس نشان دادند. رسای قبیله کالگراکوس در پاسخ به پیشنهاد صلح ها آنها را قلدرهای دنیا خطاب کردند و گفتند بر و چپاوال و قتل عام نام دروغین امپراتوری میگذارند به ویرانی می‌کشانند و آن را صلح می‌نامند اما این به این معنی نیست که ها هیچ چیز با ارزشی از خود به جا نگذاشتند خط قرمز کشیدن بر تمام امپراتوری ها و مردودانستن همه میراسهای های امپراتوری به مفهوم انکار بخش اعظمی از فرهنگ انسانی است. حاکمان امپراتوری از سود فتوحات نه تنها برای پرداخت هزینه های ارتش و برج و قلعه بلکه همچنین برای فلسفه، هنر، نظام قضایی و امور خیریه استفاده می کردند. یک قسمت برجسته دستاوردهای فرهنگی انسانی در گروه استثمار مردم تحت حاکمیت بوده. آن سودها و ثروت‌هایی که امپریالیسم رومی اندوخت برای سیسرو، سنکا و سنت آگوستین فراغت و امکانات مادی لازم را فراهم آورد تا فکر کنند و بنویسند. تاج محل می توانست بدون ثروت انباشته شده از استثمار توده های هندی توسط مغول ساخته شود. دستمزده هایدن و مدزارد از سودهای امپراتوری هابسبورگ و از حاکمیتش بر استانهای های مجار و رومانی زبان پرداخته شد. اگر نگاهی به فراسوی فرهنگ حاکمان و هنر متعالی بیاندازیم و به جای آن روی دنیای مردم معمولی تمرکز کنیم میراسهای های امپراتوری در اغلب فرهنگهای نوین را باز خواهیم یافت امروزه اغلب ما به زبانهای آنها امپراتوری هایی که به ضرب شمشیر بر نیاکان ما تحمیل می شدن صحبت می‌کنیم، فکر می‌کنیم و رویا بافی می کنیم. اکثر مردم آسیای شرقی به زبان امپراتوری هان صحبت می و رویا بافی می کنند. تقریبا همه ساکنین دو قاره امریکایی صرف نظر از ریشه های قومی از شبه جزیره باروف در آلاسکا گرفته تا تنگه های ماجلان، به یکی از آن چهار زبان امپراتوری اسپانیایی، پرتغالی، فرانسوی یا انگلیسی صحبت می‌کنند. های امروزی به عربی حرف می‌زنند و مثل عرب‌ها فکر می‌کنند و از صمیم قلب هویت خود را با آن امپراتوری عرب تعین می‌کنند که مصر را در قرن هفتم به تسخیر در و و قیام‌های مکرری را که بر علیه حاکمیت صورت گرفت، وحشیانه در هم کوبید. در حدود دو میلیون زلوی آفریقای جنوبی به گذشته دوران پرشکوه زلو در قرن نوزدهم خیره می شوند. اینکه بسیاری از آنها فرزندان قبیله هایی هستند که بر علیه امپراتوری زلو جنگیدند و بعد از جنگهای خونین در امپراتوری ادغام شدند. این به صلاح شماست. اولین امپراتوری که راجع به آن اطلاعات دقیقی داریم، امپراتوری آکادی تحت حاکمیت سارگون کبیر در حدود 2250 سال قبل از میلاد است. سارگون کار خود را به عنوان شاه کیش شهر بسیار کوچکی در بین و نهر ناغاز کرد. ای چند دهه اون نه تنها تمام شهرهای دیگر بین و نهرین بلکه سرزمین های وسیع مرکزی خارج از بین و نهرین را تحت کنترل و اداره درآورد. در آورد سارگود بر خود که تمام دنیا را فتح کرده ولی در حقیقت قلم قلمرو او از خلیج فارس تا مدیترانه و قسمت‌های زیادی از عراق و سوریه امروزی با تکه‌هایی از ایران و ترکیه امروزی را در بر می‌گرفت امپراتوری آکادی مدتی طولانی بعد از مرگ بنیانگذارش بر جا نماند. اما سارگون بعد از خود یک خرقه امپراتوری به جا گذاشت که مدعیان فراوانی پیدا کرد. در دوره 1700 ساله بعدی شاهان بابلی های آشوری شیوه سارگون را به عنوان یک شیوه حکومتی الگوی خود قرار دادند و آنها هم به خود میبالیدند که همه دنیا را تسخیر کردند. بعدها در حدود 550 سال قبل از میلاد کورش کبیر پارسی با گذافه های باز هم قرراتری پا به میدان گذاشت شاهان آشوری همیشه شاهان آشوری باقی ماندند آنها حتی اگر ادعای فرمانروایی بر تمام جهان را داشتند برای شکوه و جلال بیشتر آشوری بود و از این بابت هم شرمی نداشتند از طرف دیگر کوروش نه تنها ادعای فرمانروایی بر تمام جهان را داشت بلکه این حاکمیت را مردمی هم میدانست و به پارسی ها می گفت ما به خاطر خود شما بر شما حکومت می کنیم. تمایل داشت تا توده های تحت حاکمیتش به او عشق ببرزند و خرسند باشند که خادمین پارسی هستند. مروفترین نمونه تلاش های مبتکرانه کوروش برای برخورداری از حمایت ملی این بود که اجازه می داد تا یهودیان تبعیدی در بابل به سرزمین مادری یهودی خود بازگردند و معبد خود را بازسازی کنند. او حتی پیشنهاد کمک مالی هم به آنها می کرد. کوروش خود را تنها یک شاه پارسی نمی دانست که بر یهودیان حکمی راند. بلکه همچنین شاه یهودیان هم بود و مسئول رفاه آنها هم بود ادعای حاکمیت بر جهان به خاطر ساکنانش شگفتنگیز بود تکامل انسان خردمند را همسان با دیگر پستانداران موجودی بیگانه حراس خلق کرد انسان خردمند بر اساس غریزه انسانیت را به دو بخش ما و آنها تقسیم کرد ما مردمی مثل من و شما هستند که در زبان دین و آداب و رسوم با ما مشترکند ما همه در قبال هم مسئولیم اما در قبال آنها مسئول نیستیم ما همیشه از آنها جدا بوده ایم و هیچ دینی به آنها نداریم ما نمیخواهیم آنها را در سرزمین خود ببینیم و برای ما هم اهمیتی ندارد که چه اتفاقی در سرزمینشا میافتد. به می میتوان اسم آنها را آدم گذاشت در زبان مردم دینکا در سودان دینکا به معنی مردم است کسانی که دینکا نیستند مردم نیستند دشمنان خونی دینکه ها هستند. معنی نوئر در زبان نوئر چیست؟ معنی آن مردم اصلی و اولی است. هزاران کیلومتر دور از صحراهای سودان در سرزمین های یخی منجمد آلاسکا و شمال شرقی سیبری یوپیک ها زندگی می کنند. معنی یوپیک در آن زبان چیست؟ معنی آن مردم باقی است. ایدالوژی امپراتوری از گروش به بعد از انحصارطلبی قومی چرخشی کرد و پذیرفتن دیگر اقوام در میان خود و همه جانبه نگری را مبنای کار خود قرار داد. امپراتوری حتی اگر بر تفاوتهای نژادی و فرهنگی میان حاکمان و تابعین تاکید میکرد با این وجود وحدت پایه‌ای تمامی دنیا و وجود اصول مشترک حکومتی در تمام مکانها و زمانها و مسئولیت متقابل انسانها در قبال هم را به رسمیت شناخت نژاد انسانی به عنوان یک خانواده گسترده قلم داد می شود. امتیازات والدین و مسئولیت رفاه فرزندان در هم آمیختند این چشمنداز امپراتوری جدید از کوروش و پارسیان به اسکندر کبیر انتقال یافت و از او به شاهان هلنی، امپراتوری های رومی، خلیفه های مسلمان، خاندان های هندی و نهایتاً حتی به ارشدهای شوروی و رئیس جمهوری های آمریکایی هم رسید این افق خیراندیشانه ای امپراتوری به وجود امپراتوری ها حقانیت داد و نه تنها تلاش های مردم تحت سلطه برای شورش را عقیم کرد بلکه همچنین ادعاهای توده های مستقل را که در مقابل گسترش امپراتوری ها مقاومت می کردند خنسا می کرد چشمنداز های امپراتوری مشابهی مستقل از نمونی پارسی در اقصانقات جهان به خصوص در آمریکای مرکزی در مناطق آندو چین چک گرفتند بر اساس نظریه سیاسی سنتی چینی آسمان مزهر مشروعیت مقتدران چینی بر روی زمین است آسمان با ارزشترین افراد یا خانواده را انتخاب می کند و به آنها قیمومیت آسمان را عطا می کند. بعد این فرد یا خانواده بر همه چیز و همه کس زیر پهنه آسمان و در جهت منافع آنها حکم میراند. بنابراین این یک اقتدار مشروع بر اساس تعریفی است. اگر حاکمی فاقد اختیارات آسمانی باشد، آنگاه مشروعیت حکومت را حتی بر یک شهر از دست خواهد داد. اگر حاکمی دارای اختیار باشد، ملزم خواهد بود تا ادالت و توازن را بر تمامی جهان اشائه دهد. اختیار آسمانی نمی همزمان به چندین داوطلب اعطا شود و در نتیجه نمی توان به وجود بیش از یک دولت مستقل مشروعیت بخشید. امپراتوری متحد چین، کین، چی، دی به عنوان اولین امپراتور ادعا می کرد که در چهار سوی جهان هر کجا که اثری از انسان باشد، همه چیز به امپراتورها تعلق دارد و کسی نیست که خادم امپراتوری نبوده باشد. عطوفت او حتی شامل حال از و گاوها هم می شود. کسی نیست که از آن برخوردار نشود. هر کسی در خانه خود امنیت دارد. از آن پس، در حیطه سیاسی تفکر چینی و نیز در حافظه تاریخی چینی دوره های امپراتوری به عنوان اصر طلایی نظم و ادالت قلم داد شده. در تزاد با نگرش غربی نوین که یک دنیای عادلانه را مجموعی از دولتهای ملی مستقل تشکیل می‌دادند، دورهای دوره تجزیه سیاسی در چین به عنوان دوران تاریکی و هرج و مرج و دیده می‌شد. این درک تأثیرات عمیقی بر تاریخ چین گذاشته. هر بار که یک امپراتوری فرو می ریخت، نظریه سیاسی حاکم به قدرت‌ها فشار می‌آورد که بر شاهزادگی های حقیر مستقل تکیه نکنند و به جای آن تلاش در وحدت داشته باشند. این تلاش دیر یا زود برای همیشه به موفقیت می رسید. وقتی که آنها ما می شود. امپراتوریها نقش تعیین ای در اتقام انبوه فرهنگهای کوچک در معدود فرهنگهای بزرگ داشتند عقاید مردم کالاها و فناوری در چارچوب مرزهای امپراتوری آسانتر از مناطق سیاسی جداگانه اشاعه میافتند. اغلب این خود امپراتوریها بودند که امدن به اشاعه عقاید نهادها عادات و هنجارها میپرداختند یک دلیل این بود که زندگی را برایشان صادهتر میکرد اداره یک امپراتوری که در آن هر منطقه کوچک مجموعه قوانین، شیوه نوشتاری، زبان و واحد ارزی خود را دارد بسیار مشکل تر است. همگونسازی برای امپراتورها موهبت بود. یک دلیل دیگر و به همان اندازه مهم برای اینکه ها فعالانه فرهنگ‌های عمومی را رواج می‌دادند این بوده که مشروعیت به دست می‌آوردند. امپراتوری‌ها حداقل از دوران کوروش و کینشی اعمالشان را خواه با راهسازی یا با خونریزی به عنوان گامی ضروری مشروعیت دادند تا بتوانند فرهنگ حاکم را رواج دهند که گاه حتی مغلوبین هم از آن نفع بیشتری می‌بردند این مزیت‌ها گاه برجسته بودند مثل اعمال نظم و قانون برنامه ریزی شهری همگونسازی وزن و اندازگیری و گاهی هم مسائل تردید برانگیزی مثل مالیات ها، خدمت وظیفه اجباری و ستودن امپراتور. اما اغلب حاکمان امپراتوری صادقانه باور داشتند که برای رفاه ساکنان امپراتوری تلاش می کنند. طبقه حاکم چین با همسایگان سرزمینش و توده های بیگانه آن همچون بربرهای نگونبختی رفتار میکرد که گویا ضروری است تا امپراتوری التاف فرهنگی را شامل حالشان کند. قیمومیت آسمانی نه برای استثمار دنیا بلکه برای آموزش بشریت به امپراتوری تا اتامی شد. رومیان هم تسلط خود را با این استدلال توجیه می کردند که آنها به بربرها، صلح، ادالت و اصلاحشان را اتامی کردند. آلمانی های وحشی و گول های شده در کسافت و نادانی زندگی می کردند تا اینکه رومیان آنها را توسط قانون اهلی کردند. آنها را در حمام‌های عمومی شستند و با فلسفه اصلاح کردند. امپراتوری موریا در قرن سوم قبل از میلاد رسالت خود را برای نهاد که آموزش‌های بودا را در میان دنیای ناآگاه رواج دهد. خلیفه های مسلمان یک اختیار الهی دریافت کردند تا وحی پیامبری را در صورت امکان به طور صلح و در صورت لزوم با قدرت شمشیر ترویج کنند. های اسپانیا و پرتغال اعلام می‌کردند که در جزایر ایندیز و آمریکا به دنبال ثروت نبودند، بلکه در پی رواج ایمان حقیقی بودند. خوشید هیچگاه برای رسولان انگلیسی غروب نکرد تا بشارت دو همزاد لیبرالیسم و تجارت آزاد را ترویج کند. اتحاد شوروی وظیفه خود را در این دید تا تکامل اجتناب ناپذیر تاریخی از سرمایهداری به دیکتاتوری آرمانی پرولتاریا را تسهیل کند. بسیاری از آمریکایی‌ها امروزه برانند که دولتشان یک رسالت اخلاقی به عهده دارد تا محاسن دموکراسی و حقوق بشر را در میان کشورهای جهان سوم رواج دهد. حتی اگر این توفه ها به کمک موشک های کروز و هواپیماهای f 16 اهدا شوند عقاید فرهنگی منتشر شده توسط امپراتوری به ندرت یک آفریده انحصاری حاکمان بوده از آنجایی که افق امپراتوری تمایل به فراگیر بودن و دعوت کننده بودن دارد، برای سران امپراتوری نسبتا آسان بوده تا عقاید هنجارها و سنتها را از هر جای ممکنی کسب کنند و متعصبانه به یک سنت کوتاه نظرانه واحد نچسبند. در حالی که بعضی امپراتوری ها در جستجوی پالایش فرهنگی خود و بازگشت به ریشه ها بودند، اقلب امپراتوری ها تمدن ترکیبی به وجود آوردند که بسیار الهام گرفته از فرهنگ های, توده های تحت سلطه ایشان بودند. فرهنگ امپراتوری روم تقریباً به همان اندازه که رومی بود یونانی هم بود. فرهنگ امپراتوری خلفای عباسی تا قسمتی پارسی، بخشی یونانی و تا حدی عربی بود. فرهنگ امپراتوری مغولی تقلیدی از امپراتوری چینی بود، در امپراتوری ایالات متحده یک رئیس جمهور آمریکایی کنیایی تبار می‌تواند پیتزای ایتالیایی بخورد و همزمان فیلم محبوبش لورنس عربستان را تماشا کند که یک حماسه انگلیسی درباره شورش اعراب بر علیه ترک ها بود. منظور نیست که این دیگ در همجوش فرایند اتقام فرهنگی را برای مغلوبین آسانتر کرد. تمدن امپراتوری شاید به خوبی های فرهنگی بیشماری را از گروههای قومی متفاوت در خود جذب کرده باشد اما حاصل این ترکیب کماکان برای اکثریت گسترده نامعنوس باقی ماند فرایند اتقام فرهنگی اغلب دردناک و ناخوشایند بوده درست همانطور که کنار گذاشتن سنت های محلی معنوس و مورد علاقه کار ساده ای نیست، پذیرش و درک فرهنگ امپراتوری هم دشوار و دق آفرین است. بدتر از همه این بود که وقتی توده های تحت سلطه موفق به پذیرش فرهنگ امپراتوری می شدند، باز چندین دهه، اگر نگوییم چند سده وقت لازم بود تا امپراتوری حاکم آنها را به عنوان بخشی از ما بپذیرد. نسل‌های میانی مغلوب شدگان و ادغام شدگان در سردی و بیتفاوتی باقی می‌ماندند. آنها طی این مدت فرهنگ بومی مورد علاقه خود را از دست می‌دادند، اما هنوز در دنیای امپراتوری به عنوان شهروند درجه دو پذیرفته می‌شدند. اما همان فرهنگی که این شهروندان پذیرفته بودند، به آنها به عنوان بربر مینگریست. به عنوان مثال یک ایبریایی موفق را در نظر بگیرید که یک قرن بعد از سقوط نومانتی زندگی خوبی برای خود دست و پا کرده و با گویش بومی سلتی خود با والدینش صحبت می کند. اما لاتین را هم با لحجه ای کمی متفاوت به خوبی یاد گرفته چون ناچار است در محیط کار و با کارگزاران دولتی در رابطه باشد. او در مورد تمایل آتشین همسرش به یک آواز قشنگ احساس گذشت دارد اما از اینکه همسرش مثل دیگر زنان بومی سلیقه قدیمی سلتی خود را حفظ کرده احساس خجالت می کند. او ترجیح می دهد که همسرش از همان زیورالات ساده استفاده کند که همسر فرماندار رومی بر خود میآی او خودش بلوز رومی به دارد و به لطف موفقیتش به عنوان تاجر گاو و تخصصش در ظرافت‌های قوانین تجاری روم استطاعت آن را دارد تا ویلایی به سبک رومی برای خود بسازد اما حتی اگر او میتواند جلد سوم قصیده‌های جورجیک اثر ویرژل شاعر رومی را از بر تلاوت کند باز رومیان با او همچون یک نیمبربر بر رفتار می‌کنند او با ناامیدی در میابد که هرگز به او یک شغل دولتی نخواهند داد یا بهترین سندلی ها را در آمفیتاعتر برایش رزرو نخواهند کرد. در اواخر قرن نوزدهم بسیاری از هندی های تحصیل کرده تحت نظام آموزشی بریتانیای آموزش میدیدند. حکایت معروفی از یک هندی بلند همت نقل می‌کنند که او پیچیدگی های زبان انگلیسی را آموخت، آموزش های رقص سبک غربی را فرا گرفت و حتی به خوردن با چاقو و چنگال هم خو گرفت و در زمانی که مجهز به تمام این مهارت‌ها بود به انگلستان سفر کرد و به تحصیل حقوق در دانشگاه لندن مشغول شد و یک وکیل مدافع مجرب شد اما این مرد جوان آراسته به کراوات و کت شلوار از یک قطار در آفریقای جنوبی تحت استعمار بریتانیا بیرون انداخته شد چون اصرار داشت که در کوپه درجه یک سفر کند نه درجه ای که برای رنگین پوستانی مثل خود او در نظر گرفته شده بود اسبه این مرد کارامچاند گاندی بود در مواردی فرایند اتقام فرهنگی سرانجام موانع میان تازه واردین و حاکمان قدیمی را از بین میبرد. توده های مغلوب دیگر امپراتوری را یک نظام بیگانه نمی دیدند و فاتحان به توده های زیر دست خود با دید برابر می نگریستند. حاکمان و توده های خودی به آنها همچون ما مینگریستند. نگریستند. سرانجام بعد از گذشت ها از تداوم امپراتوری، حاکمیت شهروندی رومی را به تمام توده های تحت انقیاد اعطا کرد. غیر رومی ها می می‌توانستند به افسران ارشد ارتقا یابند و به مجلس سنا راه یابند. در سال 48 امپراتور کلادیوس در یک سخنرانی تصریح کرد که چندین نفر از شخصیت‌های برجسته از طریق عادات فرهنگ و پیوندهای زناشویی با ما ادغام شدهاند و به دین ترتیب آنها را به سنا راه داد. سناتورهای پر افاده به وارد کردن این دشمنان قدیمی به قلب نظام سیاسی روم اعتراض کردند. در پاسخ کلودیوس حقیقت ناخوشایندی را با آنها یادآوری کرد. اکثر خانواده های خود سناتورها ریشه در قبایل ایتالیایی دارند که روزی بر علیه روم میجنگیدند کسانی که بعدها شهروند رومی گرفتند. او به آنها یادآوری کرد که در حقیقت خانواده خود آنها از تبار سابین است. در طی قرن دوم روم توسط یک سلسله امپراتوری اداره می شد که در ایبریا متولد شده بودند و شاید در رکهاشان حداقل چند قطره از خون ایبریایی وجود داشت. دوران حکومت تراجان، هادریان، آنتونیوس پیوس و مارکوس آوریلیوس عموماً به عنوان دوران طلایی امپراتوری به حساب می آید. از آن پس تمام مرزهای قومی فرو ریختند. امپراتور سیپتیموس سوروس از تبار خانواده کارتاژی از منطقه لیبی بود. الاگابلوس یک سوریهی بود. امپراتور فیلیپ، فیلیپ عرب نامیده می شد، شرفندان جدید امپراتوری فرهنگ امپراتوری روم را با چنان رقبتی میپذیرفتند که صدها و حتی هزارها بعد از فروپاشی آن در صحبت کردن به زبان امپراتوری، در زندگی کردن تحت قوانین امپراتوری و همچنین پرستیدن خدای مسیحیت که امپراتوری آن را از یکی از ایالتهای شرق مدیترانه خود پذیرفته بود، ادامه دادند. فرایند مشابهی در امپراتوری عرب به وقوع در زمانی که امپراتوری عرب در میانه قرن هفتم ایجاد شد، تمایز بارزی میان حاکمان عرب مسلمان و توده های تحت انقیاد مصری، سوریهی، ایرانی و بربر بر وجود داشت که نه عرب بودند و نه مسلمان. بسیاری از توده های تحت حاکمیت امپراتوری، سرانجام اعتقاد اسلامی، زبان عربی و فرهنگ ترکیبی امپراتوری را پذیرفتند. حاکمیت قدیمی عرب با نگاهی عمیقاً خسمانه به نوپی وستگارال مینگری است و از این میتررسید که هویت و موقعیت منحصر به فرد خود را از دست بدهد. تازه ایمان آورده های درمانده ندای مشارکت برابر در امپراتوری و در جهان اسلام سر دادند تا اینکه بالاخره به خواست خود رسیدند. مصریها، ها و بین و ها بیش از پیش به عنوان عرب نگریسته شدند. عربها به نوبه خود چه عربهای اصلی عربستان و چه عربهایی به رسمیت شناخته شده مصر و سوریه به طور روزافزونی تحت سلطه مسلمانان غیر عرب، به خصوص ایرانیها، ترکها و بربرها قرار گرفتند. موفقیت بزرگ امپراتوری عرب در این بود که فرهنگ امپراتوری قلبن از جانب توده های غیر عرب مورد پذیرش قرار گرفت و اینها خود به استقرار، توسعه و ترویج آن پرداختند. حتی پس از آنکه امپراتوری از بین رفته بود و عرب ها به عنوان یک گروه قومی سلطه خود را از دست داده بودند. در چین فرایند استقرار امپراتوری باز هم موفقیت آمیزتر بود. تاییه بیش از دو هزار سال ترکیبی از گروه های قومی و فرهنگی به وجود آمد که در آغاز بربر خانده می شدند اما با موفقیت در فرهنگ امپراتوری چین ادغام شدند و به سبک هان چینی شدند. اوج موفقیت امپراتوری چین این است که هنوز زنده و فعال است اما به سختی می توان آن را امپراتوری خواند بجز در مراکز دور افتادهی مثل تبت و زینجیانگ. بیش از 90 درصد از جمعیت چین از دگاه خود و دیگران هان خوانده می شوند. به همین صورت میتوانیم توانیم فرایند استعمارزدایی در دههای اخیر را درک کنیم. در عصر جدید اروپاییان بخش اعظمی از دنیا را به منظور اشراعه فرهنگ غربی برتر تسخیر کردند. آنها به قدری در اهدافشان موفق بودند که میلیاردها نفر به تدریج بخشهای های برجسته از آن فرهنگ را در خود پذیرفتند. هندیها آفریقاییها عربها چینیها و ماوریها شروع کردند به یادگیری زبانهای فرانسه انگلیسی و اسپانیایی پذیرش حقوق بشر و اصول خودمختاری و های غربی مثل لیبرالیسم کاپیتالیسم کمونیسم فمینیسم و ناسیونالیسم را پذیرفتند تا قرن بیستم آن گروه های محلی که ارزش های غربی را پذیرفتند به اعتبار همان ارزشها ها خواستار برابری با فاتحان اروپایی شدند بسیاری از جنبش های ضد استعماری دستمایه فکری خود را از شعارهای استقلال، سوسیالیسم و حقوق بشر گرفتند که همگی میراث غربی هستند درست همانطور که مصری ها، ایرانی ها و ترکها آن فرهنگ امپراتوری را که از فاتحان عرب به برده بودند پذیرفتند و با خود سازگار کردند هندی ها، ها و چینی های امروز هم تلاش می کنند بسیاری از ارکان فرهنگی سروران امپراتوری گذشته خود را بپذیرند و با نیازها و سنت های خود سازگار سازند قهرمانان و اهریمنان تاریخ تقسیم تاریخ به قهرمانان و اهریمنان و جای دادن امپراتوری ها در میان اهریمنان اقوا کننده است زیرا اکثریت قریب به اتفاق امپراتوریها بر خونریزی بنا شده و قدرت خود را بر پایه سرکوب و جنگ حفظ کردند. اما اغلب فرهنگ های امروزی بر پایه میراث‌های های امپراتوری بنا شدند. این که امپراتوری بر اساس تعریف بد هستند، چه چیزی درباره ما میگوید؟ مکاتب فکری و جنبش‌های سیاسی وجود دارند که در جستجوی زدودن فرهنگ بشری از زنگارهای امپریالیسم هستند به طوری که آنچه که به جا می ماند خالص، قابل اعتماد و به از آلودگی باشد این ایدئولوژی‌ها در بهترین حالت ساده‌لوحانه و در بدترین حالت جلای دروغینی برای ناسیونالیسم زمخت و متعصبانه هستند شاید بتوان از میان خیلی فرهنگ‌های بشری در ابتدای تاریخ مکتوب مواردی را فرض کرد که خلوص و پاکی خود را حفظ کردند و از گزند های خارجی دیگر جوامع در امان ماندند اما هیچ مورد مستدلی برای وجود چنین فرهنگی نه در ابتدای تاریخ و مطلقاً نه در اصر کنونی بر روی کره زمین وجود نداشته و ندارد همه فرهنگ‌ها حداقل تا حدی میراث امپراتوری‌ها و تمدن‌های امپراتوری هستند و هیچ جراحی آکادمیک یا سیاسی نمیتواند این میراث‌ها را از آنها جدا کند مگر اینکه بیمار را بکشد به عنوان مثال رابطه اشق و نفرت میان جمهوری مستقل هند امروزی و هند تحت استعمار بریتانیا را در نظر بگیرید تسخیر و اشغال هند توسط انگلیس به بهای جان ها هندی تمام شد و به تحقیر و استثمار صدها میلیون نفر انجامید. اما بسیاری از هندی ها با رقبت، اندیشه های غربی مثل خودمختاری و حقوق بشر را در خود پذیرفتند و از اینکه بریتانیاییها از وفاداری به ارزش های بریتانیایی خود یعنی به رسمیت شناختن حق برابر میان بومیان هندی و بریتانیایی ها سرباز زدند آزرده شدند. با این وجود دولت نوین هند فرزند امپراتوری بریتانیاست، بریتانیایی ها بومی های را کشتار و آزار و کردند اما در عین حال قلمروهای پادشاهی و شاهزادگان و قبایل آشفته و پارهپاره متخاسم را متحد کردند و یک آگاهی ملی مشترک خلق کردند و کشوری را فریدند که کمابیش کارایی یک واحد سیاسی را دارد آنها پایه های نظام حقوقی هند را بنا کردند ساختارهای اداریش را به وجود آوردند و شبکه راهاهنی ساختند که برای یکپارچگی اقتصادی آن اهمیت حیاتی دارد. هند مستقل با الهام از الگوی بریتانیایی ساختار حکومتی دموکراسی غربی را اتخاذ کرد و زبان انگلیسی هنوز زبان مشترک شپقاره است یعنی زبان خنثایی است که بومیهای هندی، تامیل و مالایی میتوانند توسط آن به عنوان زبان مشترک با همدیگر مکالمه کنند. هندی ها شیفته چای و بازی کریکت هستند که هر دوی اینها میراث بریتانیا کشت تجاری چای تا اواسط قرن نوزدهم که توسط کمپانی بریتانیایی هند شرقی آغاز شد در هند وجود نداشت این صاحبهای پر افاده بریتانیایی بودند که عادت نوشیدن چای را در سراسر شبه قاره مرسوم کردند چه تعداد از های امروز تقاضای رأی‌گیری برای محروم کردن خود از دموکراسی، زبان انگلیسی، شبکه راه آهن سراسری، نظام حقوقی، بازی کریکت و چای خواهند کرد به این بهانه که همه اینها میراث امپراتوری هستند و حتی اگر این تقاضا را مطرح کنند آیا این تقاضای رأی‌گیری برای تصمیم در این خصوص به خودی خود دین آنها را نسبت به اربابان پیشینشان نمایان نمی‌سازد حتی اگر میراس یک امپراتوری سرکوبگر را به امید بازسازی و حفاظت از فرهنگ های اصیل پیشین به طور کامل رد کنیم قطعا فقط از میراث یک امپراتوری قدیمی تر دفاع می کردیم که کمتر سرکوبگر نبود آنها که از تحریف فرهنگ هندی که توسط سلطنت انگلیس اعمال می شد خشمین هستند سهون میراث امپراتوری مقل و سلطنت سلطجوی دهلی نو را تقدیس می کنند و کسانی که تلاش می کنند فرهنگ اصیل هندی را از نفوذ بیگانه این امپراتوری های مسلمان نجات دهند میراس امپراتوری گپتا، کوشان و موریا را تقدیس می کنند اگر یک ناسیونالیست هندوی افراتی تمام بناهای به جامانده از حاکمان انگلیسی مثل ایستگاه اصلی قطار بنبعی را خراب می کرد در برابر بناهای به جامانده توسط فاتحان مسلمان هندی مثل تاج محل چه اتفاقی برایش می افتاد هیچ کس به درستی جوابی برای این معضل میراث فرهنگی ندارد هر پاسخی که به آن بدهیم، ناچار از اعتراف به پیچیدگی این دوگانگی هستیم و قبول اینکه که تقسیم ساده‌نگرانه گذشته به قهرمانان و اهریمنان ما را به جایی نمی‌رساند. اگر طبعا خواهان نیستیم که بپذیریم که معمولا از اهریمنان پیروی می‌کنیم. امپراتوری جدید جهانی از حدود سال دیویست قبل از میلاد به بعد، اکثر انسانها در امپراتوری زندگی کردند و احتمالاً در آینده هم همین روند ادامه پیدا خواهد کرد. اما این بار امپراتوری بعدی واقعا جهانی خواهد یافت. چشم تسلط امپراتوری بر تمامی جهان میتواند غریب قریب الوقوع باشد. به طوری که قرن 21 نشان می دهد، ناسیونالیسم به سرعت اعتبار خود را از دست می دهد و توده های هرچه بیشتری به این باور می رسند که تمامیت بشر منبع مشروع تری برای اقتدار سیاسی است. نه اعضای یک ملیت خاص و راهنمای سیاست باید بر پایه حراست از حقوق بشر و دفاع از منافع تمامیت گونه انسانی باشد. در این صورت، وجود قریب به 200 دولت مستقل بیشتر به جای اینکه کمکی باشد، یک مانع محسوب می شود. از آنجایی که سوئدی ها،, ها و نیجریایی ها استحقاق یک حقوق بشر واحد دارند، آیا آسانتر نیست تا یک حکومت واحد جهانی از آنها حراست کند؟ ظهور مشکلاتی که ریشه جهانی دارند، مثل ذوب شدن یخهای قطبی، مشروعیت باقی دولت‌های دولتهای ملی مستقل را از بین می برد. هیچ دولت مقتدری قادر نخواهد بود تا به تنهایی بر مشکل گرمای جهانی فائق آید. قیم آسمانی چینی از آسمان نازل می شود تا مشکلات بشریت را حل کند و قیم آسمانی نوین باید از جانب بشریت اتا شود تا مشکلات آسمانی مثل سوراخ خلایه های و انباشت گازهای گلخانه ای را حل کند. رنگ امپراتوری جهانی باید سبز باشد. دنیای امروز سال 2014 هنوز از نظر سیاسی پراکنده است اما دولت به سرعت استقلال خود را از دست می دهند. هیچ دولتی به واقع قادر نخواهد بود تا سیاست اقتصادی مستقلی اتخاذ کند و به خواست خود اعلان جنگ کند یا حتی امور داخلی خود را به صلاح خود رفع روجو کند. دولتها بیش از پیش تابع دسیسه های جهانی، دخالت کمپانی های فراملیتی، سازمان های نظارت آرای عمومی جهانی و نظام قضایی بینمللی هستند. دولتان ناچارند تا خود را با میارهای جهانی فعالیت مالی، سیاست زیست محیطی و ادالت تطبیق دهند. امواج انواج عظیم و قدرتمند سرمایه، کار و اطلاعات جهان را می و تغییر شکل می دهند و به این فضاینده به مرزها و آرای دولتی بی هستند. آن امپراتوری جهانی که در مقابل چشمان ما شکل می‌گیرد، توسط یک دولت یا گروه قومی خاصی اداره نمی‌شود، بلکه در شباهت بسیار با امپراتوری دوره‌های بعدی روم باستان، توسط یک رهبری قوم اداره می‌شود و اتحاد خود را از طریق یک فرهنگ مشترک و منافع مشترک حفظ می‌کند. در حیطه بینومللی، تعداد هرچه بیشتری از کارآفرینان، مهندسین، کارشناسان، متخصصین، محققین، حقوقدانان و مدیران برای پیوستن به امپراتوری فراخانده می شوند. اینها باید تصمیم بگیرند که آیا به فراخان امپراتوری پاسخ دهند یا نسبت به دولت و مردم خود وفادار بمانند. تعداد روزفزونی امپراتوری را برمی گذینند.